جواب گفتن وزیر که خلوت را نمیشکنم شکنم، گفت های خود کوته کنید، پند را در جان و در دل ره کنید، گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین، گر کمالم با کمال انکار چیست، ورنیم این زحمت و آزار چیست، من نخواهم شد از این خلوت برون، زن که مشغولم به احوال درون،